ریچل یک شنبه 21 جولای 2013 صبح با ذهنی پر از اون بیدار میشم. هیچ کدوم از کارهایی که کردم به نظر واقعی نمیاد. پوستم مور, مور میشه. به شدت به یه نوشیدنی نیاز دارم اما نمیتونم این کارو بکنم. باید ذهنمو روشن نگه دارم به خاطر میگان، به خاطر اسکات. دیروز یه ذره به خودم رسیدم. موهامو شستم و یکم آرایش کردم. تنها شلوار جینی رو که هنوز اندازمه با یه بلوزه کتونی پوشیدم و سندلهای پاشن کتام رو کردم. مم. خوب به نظر می رسیدم. به خودم گفتم نگرانی برای سرووزم مسخره است. چون آخرین چیزی که اسکات بهش فکر میکنه اینه که من جوری به نظر میام. اما نتونستم جلو خودم رو بگیرم. اولین باری بود که داشتم می رفتم پیشش برای مهمه. خیلی مهمه. حدود ساعت شیشانی بود که سوار قطار شدم و از آشبوری زدم بیرون و از هفت گذشته بود که رسیدم بیدنی. امتداد خیابون روزبری قدم زدم و از زیرگذر عبور کردم. این بار نگاه نکردم. تنمارشو نداشتم. از جلوی پلک 23 خونه تام آنا با قدم تند رد شدم. با سر پایین و عینک آفتابی روی چشمم دعا میکردم منو نبیند. خیابون ساکت بود. هیچ کس اون اطراف نبود. دو تا ماشین با احتیاط از وسط خیابون بین ردیف ماشنای پارک شده میروندن. این یه خیابون کچیک خوابالوده. تمیز و شیک. با یه عالم خانواده های جوان. اونا همه شامشون رو حدود ساعت هفت میخورن و میشینن رو مبل. مامان و بابا با چند تا کچول وسطشون <تصفح> که به زور خودشون جا جادادن. در حال تماشای برنامه عامل X. از خونه پرک 23 تا پلاک 15 بیش از پنج قدم یا 6 قدم راه نیست. اما انگار فاصله از این سر دنیا تا اون سرشه. یه عمر طول کشه تا رسیدم. با هم مثل سرب سنگین شده بود. قدمام انگار که مست باشم لرزون و بیجون بود. انگار هر لحظه نزدیک بود رو پیاده رو سر بخورم. هنوز دستم رو در بود و مشغول در زدن بودم که اسکات در باز کرده. دستم هنوز از روی در پایین نیورده بودم که بین در سبز شد. در برابر من بزرگ و با آباحته. تمام فضای لایده رو پر کرد. پرسید. ریچل؟ بهم نگاه کرد. بدون لبخند. سرتکون دادم. دست پیش آورد و منم دست دادم. بهم اشاره کرد برم توی اتاق. اما برای یه لحظه تکون نخوردن. ازش ترسیده بودم. هیکلش از نزدیک تحدیدامیزه. قد بلند و چاشونه با بازو و سینه ستبر. دستاش بزرگن. به ذهنم زد که میتونه من خرد کنه. گردن و دنده رو بشکنه. بدون هیچ زحمتی. از کنارش رد شدم و رفتم تو راه رو. همی که رد میشدم بازوهام هم باش تماس پیدا کرد و احساس کردم یه سرخی تو صورتم دوید بوی عرق مونده میداد و موهای سیاهش در هم آشفته بود انگار مدتی می شد که نشسته بودتشون. توی اتاق ننش بود که حسن آشناپنداری و ممس اونقدر زیاد که داشت هول برم می داشت. متوجه شدم شامینه اینجا به خاطر تو رففتگی طبیعی دیوار یکم عقبتر از شامینه معمولی توی دیوار فرو رفته. نور توی خیابون از طریق این درز و شکافا عریپ توی خونه راه کشیده بود. میدونستم اگه به سمت چپ هم نگاه کنم، اونجا در کشویه شیشه و بعد چمن و اون طرفترم ترم آهن به همون سمت بگشتم و اونجا میز آشپزخونر رو دیدم. درای کشویه پشت میز و تکه چمن. این خونه رو میشناختم. احساس سرگیجه کردم میخواستم بشینم. به حفره تاریک شنبه شب فکر کردم. تمام اون ساعتهای گذشته. این البته هیچ معنی نداشت. من این خونه رو میشنسم. اما معنیش این نیست که قبلا اینجا بودم. اه. من اینجا رو چون دقیقاً مثل یه پلاک 23 راهروی داره که می‌خوره به پله‌ها و از سمت راست به اتاق نشیمن و از اونجا به آشپزخونه. حیات و باغ برام آشنان چون از توی قطار دیدمش. طبقه بالا نرفتم اما می‌دونم اگه می‌رفتم اونجا فضای وسیع داره با یه پنجره بزرگ ارسیدار رو اگه آدم از پنجره بره بیرون می‌خوره به تراس که همون سقف کاذبه. می‌دونم که اونجا دو تا اتاق خواب هست، جادار با پنجره‌های بزرگ برای تماشای خیابون. و یه اتاق کوچیک در پشت اون مسلط به باق. فقط چون من داخل و بیرون این خونه رو می‌شناسم به این معنی نیست که ابلن اینجا بودم. هنوز داشتم می‌لرزیدم که اسکا داش رو به من نشون داد. بهم یه فنجون چای پیش کرد. پشت میز پاسمونار نشستم. در حالی که منتظر دوش اومدن آب کتری بود یه چای کیسه توی لیوان انداخ و بقیه آب جوش رو روی پیشخون گذاشت. انگار زیر لب با خودش حرف می‌زد. یه بوی تند زرد و عفونی خنده توی اتاق بود. اما خود اسکا تمیز نبود. یه لکه عرق باشه، تیشرتش بود و شربارجینش هم انگار که براش خیلی بزرگ باشه، شلوول از پاش آویزون بود. حیرون بودم آخرین باری که اون چیزی خورده کی بوده. لیوان چای گذاشت جلم و دست سینه نشست روبروم. پشت میزاش پسخونه. سکوت کش اومد. وضعی بینمونو پر کرد. گل توی گوشم زنگ میخورد و احساس گرما و راحت نبودن داشتم. ذهنم یه خالی شد. نمیدونستم اونجا چی میخواستم. چرا از اون همه جا؟ باید بیم اینجا. توی این فاصله من صدای ضعیف ریز و سنگینی شنیدم. قطار داشت میرست و چقدر احساس راحتی میداد این صدای قدیمی؟ بالاخره گفت شما دوست مگان هستی؟ شنیدن اسمش از زبون اون راه گرمو بند آورد. زل زدم به میز دستامو محکم دور لیوان حلقه کردم گفتم بب... بله میشنستمش یه کمی از گالری بهم نگاه کرد منتظر چشم راه وقتی که دندوناشو رو روی همدیگه فشار میده تونستم تکون خوردن آرواره فکرش رو ببینم دنبال لغتی میگشتم که به زبونم نمیامد باید بهتر باید آماده میشدم پرسیدم شما چه خبری ندارین؟ نگاهش به میخ شد و برای یه لحظه احساس ترس کردم حرف غلطی زده بودم برای خبرگیری نایمده بودم که باید عصبانی شده باشه باید ازم بخواد از خونش برم گفت ام ام. نه چیزی که میخواستیم به هم بگین چی بود قطار آهسته رد میشد نگاه من کشیده شد به همون سمتی که قطار بود نگاه کردم احساس سرگیجه کردم. انگار داشتم پرواز روح و تجربه میکردم. <تص> انگار داشتم به بیرون از خودم نگاه میکردم چی ایمیلتون نوشته بودین میخواین به مگان صحبت کنین صداش یه ذره بلندتر شده بود پس همیقی کشیدم احساس وحشت میکردم به شدت مواظب بودم چیزی که میخوام بگم اوضا رو بدتر نکنه نه رنجونتش گفتم با یکی دیدمش فقط از دهانم پرید رک و سری بدون ملاحظه بدون مقدمه بهم. کی okay. شما شنبه شب دیدینش به پلیس گفتین گفتم نه جمهه صبح بود شونهاش فرو افتاد اما روز جامه خوب بودش چرا این مهمه فاکش دوباره لرزه داش اصبانی میشد شما اونو اونو با کی دیدین وای مرد بله من چجوری بود بلند شد بدنش راه رو صد کرده بود دوباره پرسید به پلیس گفتین گفتم بله اما مطمئن نیستم اورا حرف منو خیلی جدی گرفته باشن چرا من فقط نمیدونم فک شاید شما باید بدونین خم شد جلو و دستاشو روی میز مشک شما چی میگین؟ مگانو کجا دیدین؟ داشت چی کار میکرد؟ پس حمیقه دیگه کشیدم گفتم اون میرون توی چمنتون بودن درست اونجا اشاره کردم به باغ اون من از تو قطار دیدم نگاه ناباور روی صورتش خیلی قطعی بود من هر روز با قطار از آشبوری میام لندن درست از اینجا عبور میکنم دیدمش با یکی بود و اون یکیش شما نبودین از کجا میدونین؟ جمعه صبح؟ جمعه؟ یه روز قبل از گم شدنش؟ بله گفت من اینجا نبودم به خاطر یه کنفرانس تو بیرمنگام از خونه دور بودم جمعه عصر برگشتم نقطه های رنگ روی هاش بالا اومد. شک و تردیدش با چیز دیگه ای عوض شده بود. پس شما اونو دیدین توی چمن با کی و... گفتم بوسیدش. بالاخره باید بهش میگفتم. باید از سو خودم میریختم بیرون. اونا داشتن همدیگر رو میبوسیدن. صاف وایساد. دستاش هنوز مشت بودن دو طرفش آویزون. نقطه های رنگی گناهاش تیره تر شدن کبودتر گفتم متاسفم من خیلی متاسفم میدونم شنیدن یه همچین یعنی چیزی خیلی وحشت با تکون دستش مانع ادامه حرفم شد. به شکل احانت آمیز معلوم بود که علاقهی به همدردی من نداشت. من میدونم این چه ازیه. نشستن اونجا. ضو یاده چه حسی داشتم وقتی توی آشپسونه خودم نشسته بودم پنج در پایین تر از این خونه در حالی که لارا بهترین دوستم روبروم نشسته بود نوزاد توپالشم توی دامنش بیقراری میکرد می به هم بهم گفت چقدر متاسفه از اینکه اون باعث ازدواج ما بوده منم به خاطر پیش پا افتاده یه حرفش کنترلم از دست دادم اون هیچی از ر من نمیدونست بهش گفتم میششم به این حست پس بهتر بری گمشی و اونم گفت اینجوری ج بچه حرف نزنم ها. از وقت حالا ندیدمش اسکات پرسید شبیه کی به نظر میرسید این مردی که شما با اون دیدینش پشت من بایستاده بود داشت حیاتو چمن رو نگاه میکرد قد بلند بود بلندتر از شما شاید با پوسته تیره فکر کنم شاید آسیایی باشه هندی تو این مایه ها و اونا هم دیگر بوسیدن بیرون اینجا توی باقه آه برنده کشید. خدایا باید یه نوشیدنی بخورم. برگشت تو صورت من. آبه میل دارین؟ من میل داشتم. من حلاک یه نوشیدنی بودم اما گفتم نه. وقتی اون برای خودش یه بطری از یخچال ورد من همجینی نگاش میکردم. بازش کرد و لاجره سر کشید. وقتی نگاه میکردم تقریبا میتونستم جریان خونک اون مایه رو توی گلوم حس کنم. آخ دستم بیتاب گرفتن یه جام بود. اسکات به پیشخون تکیه داد. سرش روی سینش خم شده بود. بعدش احساس پستی کردم. من کمک نکرده بودم. من فقط به اون حس بدتری داده بودم. یه دردی به دردش اضافه کرده بودم. من توی غم و اندوهش فضولی کرده بودم. کار من اشتباه بود. اصلا نبای اصلا نباید دروغ میگفتم داشتم بلند میشدم که گفت این شاید نمیدونم شاید شاید یه خبر خوب باشه نه شاید معنیش این باشه که حالش خوبه فقط خندهای تصنعی کرد خالی فقط اینکه با یکی دیگه فرار کرده با پشت دستش قطره اشکی رو از روی گونش پاک کرد و قلب من پاره شد خوبم نمیتونم باور کنم که هیچ تماسی نگیره به من نگاه کرد انگار من جوابا رو داشتم انگار من باید میدونستم حتما به من زنگ میزد نمیزد باید بدون چقد بیخودی ترسیدم تا حد میتونم ناامید بشم اون انقدرم کینه جو نیست هست من مثل کسی صحبت میکرد که بهش اعتماد داره مثل دوست مگان و من میدونستم که اشتماه میکنه اما حس خوبی بود اون یه گلوپ طولانی دیگه از آبشش رو سر کشید و برگش طرف باق من نگاهش رو به کپ سنگای ریز تکیه داده به نرد دنبال کردم یه ردیف طولانی سنگ از جای شروع شده بود و انتهایی هم نداشت دوباره بطری نیمر رو تا دهنش بالا آورد و بعد به شد. برگشت صورت من. پرسید. شما مگار رو از توی قطار دیدین این شما فقط داشتین بیرون پنجره رو نگاه میکردین و اون اینجا بوده زنی که شما اتفاقی میشناسینش جب به اتاق تغییر کرد خیلی هم مطمئن نبود که من یه دوست باشم شک داشت که حرفم حقیقت داشته باشه شک صورتش مثل سایه پشون گفتم بله من میدونستم که کجا زندگی میکنه؟ و افسوس لغاتی رو خوردم که اون لحظه از ذهنم بیرون پرید جایی که شما زندگی می منظورمه من قبلا اینجا بودم مدتا قبل برای همی بعضی وقتا که با قطار از اینجا رد می شدم بیرون رو نگاه میکردم تا ببینمش زده بود به میتونستم موج داغی رو که داشت تو صورتم می دوید حس کنم اغلب وقتا بیرون بود بطری خالی و گذاشت روی پیشون. دو قدم به طرف من برداشت و روی نزدیکترین صندلی به من پشت میز نشست. پس شما مگان رو خیلی خوب میشنستین. انقدر خوب که تو خونه همدیگر رو ببینین یعنی؟ میتونستم نبض گردنم رو حس کنم. سردی عرق. سردی عرق روی ستون فقراتم. حجوم تحب و آدرنالینو نباید همچین حرفی میزدم. نباید دروغ ترش میکردم. فقط یه بار من چیز من جای خونه رو بلدم چون نزدیک اینجا زندگی کردم برام ابرو بالا انداخ یکم پانیتر هم جا پلاک 23 سر تکن دادم نه نه چیزای معمولی برای وقت و زروندن میدونین که سکوتی طولانی حاکم شد انگار یهو اتاق گرم شد از همه جا بوی زده و فونی بالا میامد احساس زف داشتم سمت راستم میزی بود که با اکسای قاب گرفته تزین شده بود مگان به من می زد یه متهم خوشرو گفتم خب من دیگه باید برم به اندازه کافی وقت شما رو گرفتم. اومدم که بلند بشم اما اون دستش رو دراز کرد و گذاشت روی مرچه دستم. چه رو اصلا از صورتم بر نداشت. با ملائمت گفت نرین. هنوز نه. بلند نشدم اما دستم از زیر دستش بیرون کشیدم. به شکل ناخوشایندی احساس میکردم. انگار تحت ام گفت. این مرد این مردی که با اون دیدینش فکر میکنین اگه ببینینش بتونین تشخیصش بدین نمیتونستم بگم که من تو اداره پلیس شناساییش کردم اساس کلی برای نزدیک شدن بهش این بود که پلیس داستان من رو جدی نگرفته اگه من به حقیقت اقرارم کردم اعتمادش از بین میرفت بنابراین باز تو دروغ میگفتم گفتم مطمئن نیستم اما احتمالا بتونم یه لحظه منتظر موندم و بعد ادامه دادم. توی روزنامه یه نقل قولی از یکی از دوستای مگام بود. اسمش راجش بود. من تعجب کردم که چرا سرده داد راجش گدرال؟ نمیتونم باور کنم. اون یکی از هنرمنده که کاراش را تو گالری ارای کرده. مرد نجیبیه متعهله بچه داره. انگار که همچین چیزی معنی داره. یه لحظه سب کن. اینو گفته گفت و بلند شد. فکر کنم این رو باید عکسیا ازش باشه. صبر کن. روی پلان ناپدید شد. احساس کردم شونه هم فرو و فهمیدم از وقتی که اومدم تحت فشار و منقبض نشستم. دوباره به عکس نگاه کردم. مگان با لباس تابسونی تو ساحل، نمای نزدیکی از چهره‌اش، چشم‌های آبی با نگاهی رمیده. فقط میگان. هیچ عکسی از دو نفر اونو با هم نبود. دوباره سرکله اسکات پیدا شد. تو دستش یه کاتالوگ بود که دادش به من. یه بروشوره ارائه یه کار توی گالری بود. بازش کرد گفت اینجا اینجا ببین این را جشه. مردی جلی تابلو نقاشی آبستر وایستاده بود. اون موسنتر بود. ریش شوقت گوته و چاشونه. مردی نبود که من دیده بودمش. کسی که تو اداره پلیس جناسویش کردم این نبود. گفتم نه اینو, اینو نیست. اسکات کنارم ازداد و به کاتالوگ نگاه کردی و برگشت بی مقدمه شلنگ انداز رفت بالا. چند دقیقه بعد با لپتاب برگشت و نشست پشت نمیذاش بسونه گفت فکر کنم لپتاب باز کرد و روشن کرد فکر کنم شاید سکوت کرد و من بهش نگاه کردم صورتش روی یه عکس متمرکز شده بود از اولاتش بودن گفت مگان یه درمانگری رو میدید اسمش ابدایکه کمال ابدایک اون آسیاینی سربه یا بوسنیایی یه همچین جایی اونم هم پوستش تیره است ممکنه از دور هندی به نظر بیاد بلافاصله کلیک کرد یه وبسایتی هست هم کنم. مطمئنم که هست کنم اونجا عکسی ازش باشه لبتاب و چرخون سمت منو من تونستم سفر ببینم خودم کشیدم جلو و از نزدیک نگاه کردم گفتم ای این خود خودشه خودشه اسکات محکم لبتاب رو بست برای یه مدت طولانی هیچی نگفت همین جوری رو تکیه داد به میز و نشست. دو تا روی پیشونیش بود. دستاش می‌لرزید. بالاخره گفت. دچار می می‌شد. خوابای آشفته، همچین چیزایی. این وضعیت از پارسال گاه به گاه شروع شد. یادم نمیاد دقیقاً از کی. اون حرف میزد بدون که بهم نگاه کنه. انگار داشت با خودش حرف می زد. انگار فراموش کرده بود من اونجا. من بودم که پیشنهاد دادم با یکی صحبت کنه. من بودم که کشفرش کردم بره چون به نظر میرسید دیگه نمیتونم کمکش کنم بعد صداش یه سره شکست نمیتونستم بهش کمک کنم اما اون بهم گفت که مشکلات مشابهی در گذشته داشته و نهایتا اونو از بین رفتن اما من بادارش کردم من اصرار کردم که بره پیش دکتر اون یارو بهش توصیه شد یکم <تصح> سرفه کرد تا صداش صاف بشه به نظر می رسید روان درمانی کمک کرده باشه اون خوشحالتر بود. خنده قمگی کرد حالا می دونم چرا. دستم رو با نوازش گذاشتم روی بازوش خیلی راحت. یوهو دستش کشید عب و بلند شد. وایستاد بیاد عبانه گفت. شما باید برین مادرم قراره بیاد اینجا. منو بیشتر از یکی دو ساعت تنها نمی دمه در همین که داشتم می رفتم گرفت. پرسید. من قبلا شما جایی دیدم. برای یه لحظه فکر کردم چی باید بگم. شاید دیده باشی. شاید منو توی اداره پلیس یا اینجا یا تو خیابون دیده باشی. من شنبه شب اینجا بودم زخمی شدم. گفتم نه فکر نمی کنم. با سرعتی که می تونستم به سمت ایستگاه قطار رفتم. وسط خیابون که رسیدم برگشتم و نگاه کردم. اون هنوز اونجا توی چارت به در دربای ساده بود و نگاه میکرد.